و آله قیبین و باهرین و معصومین برس اجماع، اجمال کلمات از که به اجمال در شرک امبارات مرد مستار کندیم برای این تحریر مصدر به کلمات احسان نفر شدیم از اهل سنت این بحث و نصف در حد خودشون خسته رو فروع و تفریعاتی دارن چون دیگه چند ساتب شده خلاصه یه اهم به مطالبشون رو که در در گفته شده بود به همین فکر اصباه می کنم دیدونی به به در مصادر معروف اهل سنت دمانگان یکی از مصادر تشریع حساب شده مثل کتاب سنت و در میان کلمات خود و اصولی و دارت کلمی به مناسبتی مثل مقونی این ها به و این او بود بخصایی زیادی کردن و ما برای اینکه این بحث تقریبا طاقت زیادی روشن بشه کلمات فقدار رو خودیم به یک بقیه که رو اشاره مایی برسه بود هم دور خودش سه مسئله راجبه قرژیت اجمازه کرده بود اول آیات دوم روایات سوم هم حکم حق که ما اسطلاحاً حدس بشیم این سه مصدر چون خبتی بود در این مقلب ما درس این دیگه که از کلمات تراز اول این دیگه حالا همه شد متعبس شدن و طبعا شخصیت بزرگی همه شده در کلام متعبس شده در میکن از بحث خارج می کنه اون لیمون نکاک اساسی رو در سه مثلت جمع کرده اما چه تا امتشم یک آیه است خب این از هم قدیم اهل سنت آیه رو بزن هم خودشون مناقشات دارن هم ما شیعه علمان شیعه مثل من سه در آن استدلال منافع داشتن این آیه که <معیم> <مبارك> من یوشاور و من بعد ما تبعیل لقب خدا و یتّبّع فایل سوییل المؤمنین نوادهی ما و و به طور خیلی خلاصه و کلی، وجه استدلال با آیه این بود که برای حرف باشه و معنای را در اینجا این باشه که هر کدام از اون دو کافی باشه برای استحقاب جهنم این محاقت رسول یکی اعتبار سبیل مومنی استبلادشون این باشه اگر اعتبار غیر سبیل مومنی موجب به بشه محکم بشین است که اعتبار سبیل مومنی موجب بهشی بشه یعنی به عبارت اقرار تمسای کردن به مفهوم آقایی مبارکه چون آقایی میگه یک تب غیر صبیل مومنی نصفی جرنن پس مهمش نست که اعتبار صبیل مومنی موجب بهش این خلاصه استدلالی که شده مناقشاتی در این استطلاع شده که من امروز که بسوار انجام میکنم یه مناقشه این سرده از احر سنت همتی خود قداری هم کرده حاصل بشینی که این واقع زادن واقع جمعه نه واقعه از اون مهن که گفتیم یعنی کسی که مشافه رسول با اتباع برسه با هم نه اینکه هر کدون به تنکانیم این یک اشکال اشکال دومی که به زمین حریر سبا تفسیر که نگیدن در کلمات قبلی ها از دو من احاطه کامل به کلماتشون ندارن شاد برداشون نرشته باشن که این واق واق تفسیر باشه عطف تفسیری باشه یعنی اعتبار رهده سبیل مومن همون مشاقه تا بسوده چون رسول مثل وجود اجمالی سنسان به مومنی مومنه وجود تفسیری از از رسول الله مثل اون نقطه از مرکب که انسان سطور خرابانی باشه میبیسه اون سطور با اون نقطه مرکب یکی هم فرداشون اجمال تفسیری بس مشاقه رسول یعنی اعتبار برسد اگر این معنا هم شد این استدلاع تمام نیست این هم دو اشکال اشکال سومی که شده من از کلم مجمال اشکال که با برطرز قبول بکنیم که عرفه و این دو وجه رو چیز نکنیم ظاهر من از این است که اونیشه که در اولی غیر بوده با تو دومی هم باشه چون در اولی اینجور بود و من یو در رسول من بعد ما تبعیم لبا خدا بعد از اینکه هدایت رو فرمی محضاله که مشاقه رسول کرد خب ظاهره شده که اون دومی هم همینطور باشه من یک طب قید سمیده این من بعد ما تبعیم لبا خدا باید قاعدتا این بگه اون اولی قید داشت من بعد ما سبینه لخول خدا قابلش اینه که دومی دو هم همین پیدا رو شده پس باز درده برگجیت نمی کنه نه زادرش از بر همون دیگه اون اولی در این صورت اینم من بعد بیر مقیل مشاقه رسول و اتباع قیل سبیر قیل در مشاقه اوگرد در اتباع نه نبود. ظاهر اصل باز این طور باشه که یک تب قیل سبیر مومنین من بعد ما تباید بود اشکال چنده شد تا وسط شد اشکال چهارمی شده که خود اهل سنت این اشکال رو هم کرده و حاصل بود اشکال در ترمات اهل سنت که سبیر مومنین مراد اهل حل و نیست مثلا مراد با این اجماع مستلح نمی اجماع یعنی اتباه فقه مؤمنین هم از مرد و زن و کوچیک و بزرگ و عامی و جاهل و یعنی کل جامعه اسلامی این توش نداره که حضمت خصوص فقه ها یا اهل حل و یا اهل بلان جا یا اهل بلان مذهب که چیزی تو کلمه سریع و مؤمنی نخابید. و این اشارات این اشارات خیلی عمیقه اشارات از اشاره اول جزو اشارات بسیار قوی است که برای این استدلال وارد شده اشارات پنجم رو هم مردم سید مرتضی در شاپی داره که کردم اون بزرگواری که خود قرار بودش داره تحلیل کرده مرد هم بزرگواری بود اما خب تو این رشته های فنی و اختصاصی نبود نتونسته در این دری روشن بشه در عبارت که مراد چه چیزیه چون اگر آیونم سابرن چون این اشاره کردم اما هایو گفتم یعنی بیانند و همه هایو پیره نهاروز چون نکته لطیفی لکیفی و سیر مرتضا شده شدن یعنی صاحب هم. و اون نکته ای که ما برفرد هم این مقدمات قبول بکنیم مفهوم نداره این عمدش اینه. یعنی مفهوم هر ساله که بخواییم استفاده بکنیم اعتبار سبیل مومنی فقط موجب موجه به نجاته از این آیه در این خیلی لطیفه ازاقه این کتاب شافی ایشان از این دیدگاه خیلی خوبلاده عرضشمنده ایشون در مقابل کتاب مومنی قاضی عبدالجبار جنب بیست به حضرت چاپ جدید رو مومده مناقشه قرار که خیلی واقعا نقطه که یکی از مرزهای بزرگ متفکر شیعه در اون زمان در مقابله که از مرزهای بزرگ متفکر متفکر و معتزله کتاب ایشان رو نقدی میکنه خیلی کتاب با فائده از این جرد صاحب میاد این عبارت قادر رو میاد برند میکنه من جمله در همین وحث که اوائل کتاب هست اوائل جلد اول وحث اجما من مثل اون ازا عبارت ایشان روشن میتوی اگه آن خواستن به من سعی دوم می‌خواد یکی اینجا مفهوم معروف لرده نه معروف هست. خیلی این لطیفه اینه نیت این بسیار زیبا است از معروف سید مرتضا و یک طب غیر سویی المؤمنین خوب بگذارم که این لطیفه از آن، که این نیت را بره لطیفه ازش. یکی مثال اعرفی اگر گفت لا تجالس غیر زید، می‌دونیم لا تجالس غیر زید. این مفهوم نداره یعنی جالس زیدن فقط ابتداهای ممکن ما ست بکنیم مفهوم نداره این درست مفهوم لگه این مثل اینکه که میگه حرف زیدن مثل بیگه لا زیدن اگر میگه لا تو جال زیدن, زیدن محکوم داره لا تو جال زیدن به تحبیر مدمون زید موضوع. مثلا به تحبیر به توضیح بنده ممکن است اینطور باشه لا تجاله غیر زیر شو غیر زیر جوال هست. هست اما زیدم لا تجاله چون زیر آلف هست اما فاسه هست ممکنه هیچ منابض نداره خیلی همی که اما اگه گفت لا تجاله الا زیر میگه این مهمون داره اگر الا آور بو... خیلی انصافا حقا یوال محومه دقت نظری به کار خیلی حقیق به تلام ایشون میگه اگر میگم لا تجارست الا این محوم دارد محومه حسن هر ابا با شماست. یعنی فقط بازه بشیم با غیر نشیم. اما اگر گفت لا گفت لا به جای حرف الا عزات استثناء ایسر به که غیر باشه اینجا متعرض خیر زید شده اما متعرض خود زید نشده ساکته نکته راجب زید نگفته ممکنه هم هست که بردید واضعی در لازتو جالز و این توضیح رو من اضافه کردم میگه اگر یکی گفت لازتو زید شما چی میفهمید دیدی؟ مفهوم لغت محبوم نده خیل زید هم محبوم لغت بقیق کنید همچنان که لازتو جالز زید توش در نمیاد به حکم غیر زید اگر گفت لاس جالس غیر زید حکم زید هم از در نمیاد معکوس محکوس یک دیگر اکثر اگر میگفت لاس جالس زید حکم غیر زید در نمیامد این محکوم نداره حالا که میگه لاس جالس خیر زید باز حکم زید در میاد. لذا اشکال مرموم سید و به نظر من خیلی لطیقه نصافا خیلی ذهن بازی مرموم سید داشته از این کتاب شافی شدید جهر بسیار کتاب لطیقی دید مرد بزرگ متفکرشیه و نصافا سید و مرده بزرگوار است و موانی بسیار دقیقی داره حتی نقا چون یه از و, و, و یه خیر طبیل مؤمنیم اما این معناشی نیست که اگر اتباع صبیل مؤمنین هم کرد حتماً به بهشیده ممکن است از یه اتباع صبیل مؤمنین کرد در جایی که واضح مؤمنین به کتاب رسول ندارم کنه خب به قطعه خود منگتب غیر صبیل مؤمنین این به جرنم میره اما این معناشی نیست که علتتب و صبیل مؤمنین حتما به, به بهشیده بایش نه موضوع اشیه اشی محبوشون گفتی یکتر به غیر سبب پس معنیشه که اتباع صبیل مؤمنین فقط موجب بهشش نه ممکنه بگه اتباع صبیل مؤمنین در جایی که مؤمنین از کتاب سنت گرفتن چون الان بحثی نید که محبوش مؤمنین در مخابل کتاب سنت قرار بده خب در حق بکنیم بله، خاطر اینکه دائره شریفه مؤمنین، بله اگر اتباع غیر طویل مؤمن کن مطلقاً موجب جنت میشه. اما اتباع طویل مؤمنین هم مطلقاً موجب بهش میشه؟ خیلی اینکه انصافاً از اون جواب خود غزالی در، خود غزالی قبول نمی‌کنه. انصافاً این جواب به نظر من فوق العاده لطیفه. این نکته رو ما مطرح کردال درباره مفهوم و مفهوم گیری خیلی رو اوچند بشه که گالی محکوم هست رو با الله میشه در او اما با کلمه خیل نمیشه در بود. این فوقش در میاد که اگر اتباع سبیل مؤمنی کرد اما مطلقه نه اتباع سبیل مؤمنی در اونجایی که سبیلش نه از کتاب سنت گرفت اما جایی که از کتاب سنت نگرفتن یا در مقابل کتاب سنت هستن، این که دیگه این های فقط مال غیر سبیل مؤمنین رو میگه. اما این سن دقت کنید، دلیل اعدو ان عجیب ها. خیال کلمه غیر آمده با کلمه اله یکیه. اما با این مثالی که خود خیلی از مثال بوده مثال هر کلمه چون این سه جو من اول کلمه مثال اگر گفت لا خیر خیرزی این توش مفهوم نداره. اینجا می‌شود همین بله لاجالز الا جیز این متن باشه از هر از بدین غیر الا و اون که علمای اهل سنت را اثبات مخدوک با این مبارکه این تمام این مجموعه از اصل در کتاب فخر رازی سه چهار صفحه از متن خود کتاب مال خود ایشان است در رد و مناخشه استدلال تو آیه اما انصافا به نظر من مجموعه این وجود و کافی که برای این, که بگیم استد... این استدلال بوده که بعدها درست کردن بعد از زمان صحابه اینها کسی به زمین این معنا نیامده که آیه مبارکه ناظر به این معنی روش. حتی در مقام اونه که انصافا همینجا که جناب آقایه این آیه دلالت نظر ازداری خودش میگه مسرکی در به روایاته میگه من سنی پیش من روایاته ام بسه خب قضالی هم کسی که میفهمه بزرگان اهل حدیث این روایات مناقشه کردن اون روایات رو که خالی از مناقشه دلالتش واضح نیست مثلا روشن نیست لذا ایشون میگهد به یک تواتر اجمالی توسط کنه یا تواتر معنوی اجمالاً مجموعی روایاتی که به هم میدید. و توضیح ها میشه و ما این هم مفصل تر در عبارات فخر همه آمده و انصافاً هم محصلی نداره کلماتشون و حال بحث آیه مبارکه در روایات در ما بهش اشاره هم نشده و در کلمات اصحاب ما قبول نیفتده اما بحث روایه لاتش ما اممتی علا زلاله این در بعض از روایت ما آمده اجازه این بحث و ما بلاهاد خودمون مشکل این بحثی شهر نه زرف اصناد یک زرف دلالت هم که خطن به شهر میشه چون لازه اشتامه اممتی این مراد مثلا زن و مرد و بچه و بزرگ و کرد نه بسید شفاقه ها اممت. این باز رفتی به اجماع اصطلاحی نزد بقیه را برکستم مثلا لایزان طارف هستم من امتی طارف هستم من امتی این چرا تو بی اجماع داره این الله مثلا یه رأس و یاد امه كل خلق خلق خلق خلقه مثلا من قومن یعنی تحلیون همه تحلیر المختلین یعنی تحلیر تحلیر المختلین چرا تو بی اجماع داره غلطا به احوال انصاف بشینه که این ویباییات یک مشکل اساسی داره و بعدش هم روی مبانی باز کلامی مذاب اسلامی ممکن است مختلف معنا بشه مثلا رو مبانی کلامی شیعه لاسه اشترم این اینجور معنا شده چون در امت در هر زمان امام هست و امام هم عدد قرآن قرار داده شده نیتار بودی که سبله سر این که هیچ وقت امت خطا نمی کنه بخاطر وجود امامی باید تفسیر کلامی حدیث جور دیگه وارد شد. من شیعه با این تفسیر کلامی اصولاً حتی به حدیث این ثغری تازه رسم شده این در بعضی از خیلی در کتب قدیمی‌ها کمتر دیدم تمسک ما برای اثبات وجود امام زمان چون ظاهرا آیهی که تا روز قیامت امت از کس یعنی از کتاب جدا نمی‌شه در زمان ما منعزل در نمیه. ترجمه بدیه نیست اضافه نفو خوبی فرازم به هر حال این حدیث مبارک مضابقاً به اشخالات سندی که داره به لحاظ دلالت هم اشخال داره به لحاظ تطویق هم اشخال داره یعنی با مبانی فکریشی هم میخوره چون تو بعضی روایات ما به این شده کلام رو بیشتر در اونجا میبین به هر حال انصافن راههایی رو که آمنه نفسد در اصوات این مطلب بسیار مطلب غیرتامیه مسئله 3 رو که قضالی رفته مسئله حدسه یا عقله که عقل برید میتونه تمام خواهد جمع بشن و اشتباه بکن. این همون است که از ما رفتن این مسئله که یا حکم عقل رو همون مسئله که از ما رفتن و که اینا معتدرن این نتیجهش مسئله پشریع بودن نیست این ممکن نتیجهش این باشی که کاشف از حجت باشه نه خودش به نفسه باشه این یعنی در این مطلق سوم، اهل سنت از کردن نتیجه گره در البته حرف کردن خدا قبول نمیکنه این مطلب رو اون فقط به روایات هست. لکن لیکن اصوات در تشریح این مطلب رو علمای زادری ها راجی به اجماع صحابه گره. که اجماع صحابه کاشف از پیران بر اکبر ما هم اجماع اصحاب را کاشف از قول امام گرفتید این مسئله سوم به هر حال بنابر تمامیتش معلوم نیست اسوائی اصباط... معلوم عدم بشه اثبات بکنه مستریت اجماع رو بلکه ممکن است که کما با ظاهر با کاشفیت اجماع هم انسجام داشته باشه این سه مثلت و از انصاف قضیه مطالبشون در این جا بعد بعدم تفریعات فرامان راجع به تحبه و اجماعه که یکیده شده که یه وقتی اساس مطلب واضح نبود و میشن خود به خود احتیاج رو بخش البته بحث اجماع منقول به خبر واضح هم اونا داره البته بود مبنایی مبناه کسانی که چون یه مبنایی دارن ادیشون تادن همیشون آدم هم میشونم اصلاح بدن. که در الحمو همین که در یک فاصله مثلا در طی 10 سال 5 سال تمام فقها اتفاق مقرر اول قبلش اختلاف بوده بعداً چه اختلاف بوده همین اتفاق و ما فاش این خودش وجعه حالا اگر یک فقيه ديال خلل که ها در سال 420 همه فقها اتفاق کردند مجموعه منقول به خرابات به این شخصخ رازی در کتاب شده که قبول میکنه. میگه یه خبر خبر بود. حالا خبر رو از قول به هم بر خلاب در تو با با امکانداری مشکل است. در مشخصها یه قبول نمیکنه. اونا که اشکالی میکنه میگه چون اجماع باید در مقابل کتاب سنت نهبییس که با خبر واحد میتونیم چنین چیزی مثلل مهم نیست با خبر واحد و رابی واحد و قول فقیه وارد نیمیشون اثبات بکن و ملاحظه فرموزی این بحث توی اصول ما هم آمد لکن به این شکل چون اجماع کار از قول امامه اگر مثلا علامه نقل اجماع کرد که انما علامه کلام امام رو نقل کرده و از اللی حجت خبر وارد اون رو میگیره چون خبر قول امام رو کردن به اینه حجته که اسمش خبر وارده قبول امان رو نهار کردن اجمالا اونم وجوده چه فرمو میکنه؟ نقل تفصیلی با اجمالی فرمی نداره. این خلاصه بشی که در علمای شیعه آمده جواب یاد که استاد داد و بود که خبر واحد در محسوسات وجود. جد اینجا حقسیه پس معنی که این مسئله هم در میان اصول اهل سنت آمده هم ما کسایی که گفتن حجت نکتش که کسایی که گفتن نکتش حجت نیست چی در مبانی اونها چی در مبانی ما نکتی مذر حجت این خلاصه بحثی بود که لازم رو جب اجماع در کلمات اهل سلم حالا من معتقدم نه این آیات و نه این روایت و نه اون و جعبی این منشر نبود به نظر ما نیمید. اینا منشر باشی اینا بیشتر است که بعد درست در اون چه که به نظر ما ما که خود نشکنی نیستیم اما فکر می اگر از این راه وارد بهتر بود اون چه که به نظر ما منشأ این حجیت اجماعه یکی از دو نکته است. یک نکته همون بود که مقروم شیخ انسالی کرد در رسال داره اللرین و حمول اصلوله و حوال اصلوله تعبیر ایشان این بود بله احتمالی که داره این باشه که همین به قصه سقیفه منشأ اون به قصه سقیفه باشه و در حقیقت منشه حدیت اجماع اون باشه این مطلعه بود که ارتب شیف نوشته البته خب با ملاحظه ای که ما نسبت به کلمات شعر چه در مقاسب چه در رسائل در کتب متعددی که ما از شیخ داریم شیخ واضح نیست اما خود مسادر شیعه هم زیاد نداشته چی برسته مسادر اهل سنت احتمالا از کسی گرفته باشه از بزرگان دیگری خود ایشاری بعیده در مسادر اهل سنت این چیزی رو پیدا کرده باشه یعنی به حساب ظاهری که ما از آثار مرحوم شیخ قدس الله و سره میبینیم این رو بعید می کنیم احتمالا از مشایخ یا دیگران بزرگانی که بودن که مثلا شیخ شاگرش بوده یا در حوضها شده احتمال داره از اونها به اصطلاح گرفته شده باشه ولی بله علم و ایندالله به هر حال اون چه که میشه برای این جهت حالا سوانی که شیخ از اونها گرفته یا از اونها نگرفته اون چه که میشه در این جهت کرد یه است که است که سابقاً ارز کردیم ادهیشون این رو به پیغمبر و در بحث استحسان ارز کرده، لیکن خودشون معتقدن که این حدیث از رسول الله ثابت نیست حدیث به اصطلاح استحسان این لم یست بود رسول الله و این کلام دقیقت کلامه جناب عبدالله ابن مسعود این مسئله ای عبدالله ابن مسعود خب بلا اشوال جزوه صحابه که خیلی شعب داره به تعبیر دیدم که کسیشون نوشته که از است که اسلام رو به درست که چون عبدالله ابن مسعود شخصیتی نبوده این نیدونه چوخان بوده تو اصلاح مکه که فیغمبر میان و همونجور به علاقه فیضا بخونه بعدن میاد تو مدینه و مسلمان میشه هرچی شخصیت داره تو اسلامه یعنی با در, در نظر گرفتن به اصطلاح اسلامش خودش شخصیت دیدم یکی از اهلسانان اون از خامان مخصوصا خیلی داخل خانه فیغمبر تقریبا مثلا کارهای داخلی رو منجام میداده به قول از صحابه نوشتم ما اول خیال می کنید که اینکه جزه اهلویده از بست داخل می شود بر حال برای او به خصوص حالا روی جعات متعددی خیلی فضائل و مناقب و اینها نهارو کرده اصلا بینید که این دیم پیغمبر من از بارد می ما خیال میکردیم که که جزه اهلوید عجیبه خیلی عجیبه این واقعا وقتی کلماتشون رو بخونه خود امیر رو همین حجز و خاندان که برای قبول نمی یک کسی رو زیاد خونه هفته بگو برای او ارزی خواستم خیلی تعجب آوره نستا جیب ده. یعنی برای ماها واقعا تعجب آوره که کسی رو اینجوری مثلا یا مثلا گفته من 70 تا سور رو از زبان خیلنبر شینده و همین رو که شینده آوره. خیلی بود که این مسئله بره. خیلی عجیب آلو بره. دیگه خیلی عجیب یعنی یکی از عجایب آدم نگاه میکنه برای این سعی میکنن چقدر فضائل و منابع جور بکنن حالا پس اون باشی یا نباشه راست درو و تعجب و انسان اینه که خب اینها به نحو قطعیش به نحو روشنش به اصطلاح امیر وجود داشته نیازی نبوده به این حرفها که ما خیال میکنیم اهل وجد پیدا نه علایهاه نستجيب الله این حدیث عبدالله بن مسعود رو علایان حدیث عبدالله بن مسعود متن اولیش اینه امشب اون المسلمون حسنا فهوه اندالله حسن من یه وقتم سابقاً اعرض کردم که احتمالاً باب استحسان همون باب اجماعه یعنی نقطهی که در باب استحسان هست ما آقا با مسلمان حسن فهوه اندالله حسنان این رو از عبدالله مسئول از سلم ادریفن به پیغمبر نصف دادن اصفاتش برای پیغمبر خود محققی نشون معتقدن که ثابت نیست مال پیغمبر باشه بلکه مثلا به عکس ثابته که مال پیغمبر نیست اما کلام خود عبدالله مسعود هست اجازه بدون من اینجا این در بیارم خیلی عزیده نکته رو که ما به اصطلاح آن به اصطلاح در اینجا از عبدالله مسعود این خود صدر حدیث نیست اون صدر حدیث خود در ذهنم هست که ما را آه المسلمون حسنن فعا اندالله حسنن کتاب به اصطلاح نصف و رایه چون این یک مناسبتی آورده چون اهل رسا ابواب این نیست به حسن این شاپی کلام دست من هست بعدی هم شده جلد جلد, جلد سر سر سر سر سر. این ربایت خود ایشان میگه حدیث الول قال علیه السلام یعنی به پیغمبر نستاد مرآه حسنه. حسن آقا حسن بعد میگه قلتو کلتو کلامه این متن کتاب از سرم سابقا هدایی مرزینانی است کتاب درسی احداثم تو ایران هم سمیه ایران هم در صفحشون هدایی مرزینانی بکنن این تخریج احادیث هداری است قلتو کلام زیلعی است. از خنفی ها سمیه است این صفحان هم زحمه که خوب یاشه غریب و مرفوان مرفوان مراد ان رسول الله یعنی ما هم رسول الله سابقیست ولن عجب اللّه موقوف علی ابن مسعود موقوف این کلام صحبه از اصطلاحی استلهگان مرفوع یعنی کلام رسول الله موقوف كلام یعنی کلام صحابه مرتو یعنی کلام احد احدها رواه و احمد این احمد در مصنّدش این حدیث رو اورد حالا کار باقی نزد قلّة ابن مسعود قاب تکذب کنه ان الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خذشت قلوب اصحابي خير قلوب العباد من برادر اصلا اینکه شیخ فرموده اجماع مال همین صحابه است هم. مطلب شیخ درست این عبارات ابن مسعود برن می‌خوره فوجد قلوب اصحابي خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دين سمارعوا المسلمون حسنا فوا عند الله حسنا چون قلوب مسلمان ها في پاک ما را روشن شد این به نظر من این استحسان قرار داد این زمینه اجماع این اندازه بشینه سمارعوا المسلمون حسنا فهو عند حسنا و مارعوه و سیعن فهوه اندالله سیعن این تا اینجا وقت این رو معلی در کتاب حاکم اینجا نوشته ایشون و من طریق رواه و الحاکم فی المستدرد فی فضائل الاسطحابه حاکم در کتابش این رو عورده از احمد آورده و ابن منی ایشون توضیح نده این در حاشم توضیح نده چون حاکم قیل عجیبه از احمد آورده متن حدیث همینطوری در مصنده این که در بود حاکم آورده این زیر رو هم داره این زیر در مصنده نیست در مصنده که حاکمه وقدره از صحابتو جمیعا یستخلف عروبت این خیلی که عجباگر این ذهب در جلد سه حاکم منم مراجعه کردم تیزا کرد این اشتباه همه اشتباه با این که حالی اینطور مقال پر درگیدیس بود با وزاد ابن منی باید این طور میگفت ها میگوی زهری هم همین رو برده گفت صحیح هم زهری هم حاکم گفت صحیح هم ها شرط و شیخه بعد از ایشون دیگه دیگه هم برای حدیز اونی که به درد ما الان آن در ما نحن فیلمی خورید اینه و قدره از صحابت و جمیعه انی یسپخ لفع برده. این معید کلام شیخ انسویت کرده دیگه شیخ انسواری متفذک حاکم و, و دیگارا کسی دیگه ای نقر کرده این زیل عبارت و قدره از صحابت و جمیعه معلوم میشه یکی از مناشه اجماع همین بوده شیخ هم خب زارن اینطوره که اصل حجیت اجماع از اونهاست وال معروف میگوسم دور لاته میاد حجیتشون به ثقیفه ثقیفم به اجماعه الان یا حالا من نمیدونم اگر آیان وقتی کردن ها یا کامپیکتر یا بردش در مسادر احل سنن در این توجیه که چطور این حدیث در کتاب حاکم به نقل از احمد بن حنبل آمده در خود کتاب احمد این زیب نیست زیب خودشون گفته وزاده این زیب در محن احمد نیست میگم زهبی هم توضیح نزده خود این شخصا توضیح نزده نمیشم مال خودو من خودوانا من نزیم احتمالی که خود من میدم الان آن این بعدی ها خود اهلسان نزده میشه چون حاکم داره که دیگه همده سران احمد بن حنبل و ابن منی ابن منی اضافه میکنه، و که قاعدش این بود که باید گفت وزاده ابن منی و قدر از صحابات جمعی من فعلا که نفهمیدم خب احتمال بسیار قدیدارن که مرموم میشه فرموندن نقطش این باشه و نظر از صحابات جمعی هم پس یه مقدماتیشون چی؟ که قلوب اصحاب رسول الله اینا قلوبیست که مورد اعنایت همین قلوب جمعی جنوب ابو بکر رو خلیفه قرار دادن و تعجب آور میگه حالا میگم اون تاریخ هایی که از عبد الله مسعود کردن با این مطلبی که اگر راست باشه حالا فرض هم عبد الله مسعود نگفته نب... باشه حاکمی که ابو بکر ادعیه که نکرده و خود اونها میذارن که اتفاق صحابه بر بیعت ابو بکر نبود الا از از اینکه اهل بیت خصوصا ام بیعت نشه در میون یا اصلا گفته شده کلا نمون بیعت نکرد خب که قطعه هم سردرد عباده که بیرد نکرد یکی بزرگه یکی جزمی هم قطعیه تا آخر وفا تروبت سردرد عباده بیرد نکرد با امر هم بیرد نکرد تا رفت شام اصلا من چون هممحلی یعنی در یک ترویی محل با امر میشه با هم بد بوده در غیر از یاد دیگه گفت من در شهری که بخواد این حاکم باشه دیگه, دیگه, دیگه بلن شام سید الخرج بود و طبیعتا در اون زمان رشد بود، یه بزرگی، کاری انجام فرزند و فامیل، اقتصادی هم دنبال خب یک طایفه از خرج بیعت نکردن چطور میگه به قدر صحابت و جمعیت؟ تعجّب آوره. آره، خود مطلب درو، آره، کاردار بود. مقدمات شما مؤخراتش. ما به حسن و قدر صحابه خودشو نعر که صحابه جمیعاً بیعت نگردن. این یکی حالا این نمونه‌ها زیاده یکی بسانی. یکی از عواملی که معتزله محسن علی گراها خبر سبب و حجتی می‌زنن همین بود تو خب میاد عبدالدار مسعود حالا اگر اون نگفته باشه لاغر حاکم که اوورده این رو یه مطلب رو میگه که خلاف وجدان یعنی عباس که روش مرو داره چی میگه رو بکنی. یک مطلبی رو که خلاف وجدان فلسفی میاد نسبت میده به اصحاب اعده جميعا جمعیت و بعدش هم خب جناب عبدالله مسئول که این مثلا قلوبه خب چطور شد در عمر قد ابوبک او سائله ها داما او سائله عبدالله فلان یوسی سی ایلا تا اینجا که رسیل خشت میکنه شو هم میخواد عثمان داشتی اینه یون سی ایلا خب این چطور این قلوبه از خواب محمدین کجا رفتین کدره عمر هم که بعد در شیچ نفر قرار دار این چجور مثلا رفتین قابل انسجام این مطلب نه اولش دروسته نه آخرش درسته فقط این مطلب از اذهل که خداوند اذهش و مولانا شریف الله له حضور به این یک دوختی لطیفی داره که در مصداق که حاکم اومده را به سریع کرده این نکته لطیفی داره این نکتهش لطیفه این نکتهش درسته در بحثه در تعبیات اهل سنت مختلفند می‌دونن ملایزه کردین‌ها در بحثه کلامیشون یک رأی هست که رسول الله اوصا علی دست، مثلا رسولان گفت کعبت این خیلی ضعیفه یعنی خیلی قائل زیاد نیست یک رأی هست که نه پیغمبر اوصافی رو گفت برای خلیفه بعدی که در ابوبکر تطبیق میکنه یعنی ایانا هو واثقان لا اسمن اصطلاح جنیه اوصاف رو برانجه خود بیننده شو. این هم غالبا که نه پیغمبر چون نماز خوندن با تعبیر بر نکردن با فعلشون فعلشون دادن که این آب بعد از من خلیفه است چون ordenar تو اون رو سر نماز خوندن ان رسول الله اختیار ابو دینا سنه فناخت... دنیا به دینا پخترناه دنیا اینم درای سرع که نه هیچ واذیا هم نبوده. نداره نه برنامه تعیین بوده نه اسمی بوده نه ورشی بوده نه فعلی بوده چی چیه خود خودمون سنان ها همون خودشون تقصیح دادن قبول کردن این روایت این خوبی رو داره این روایت عبدالله عنو مسعود نشون میده که هیچ نوع تعینی برای عبو برد نبوده این جهده چیه یعنی این بحثی که ادید از اهل سنن خوده قرار فرموزی یک نقلی میخواد اختیار برای عبو قرار بدن چون ایشون داره و قدره از صحابت و جمیهن انیوستقل و عبوبت یعنی هیچ نحوه اشعاری عبدالله مسعودی عبدالله مسعود بنابراین کلام میگن از همون حدود حجرت مسلمان شده چون پیغمبر و عبوبتی آمین بیاونه تو بیاون بیدن دو شیری دیده این نحوه معدوزهی که نزاریده بود مثلا شیردادا الاخردی و بعدها هم همیشه با پیغمبر بود حتی بسی که مادر چند او داخل خونه هم با علایه از این عبارت عبدالله مسعود این نکته لطیف در میاد خوب در قطعه کنی؟ یعنی تصریح میکنه هم قبلش را آقای مسلمون الله ما قلوب اصحاب رسول الله همش اصحاب یعنی مخواد بگیم هیچ نحر اشعاری از رسول الله نبوده و قدره اصحابت و ان انیستخلت و ابو برد البته یه مثل دیگه هم داره هنی از تخلق و عبابک رسیقه جمع هنی از تخلق و این جهت روالت رو پس جهت اول تا اینجا بگیم که نکته نکته سقیقه بوده اما خب انصاف از دیگه خیلی مشکلات علمی و تاریخی و فنی و تطویقی که خودشون دارن در دیگه داره راه دوم دوباره مورده که ما پردار درسته پیش نموزن و منشه این بحث های ضعیفی شده که در اصولشون به اجماع مفهر کرد ارزایشان